بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله والصحبه أجمعين أما بعد بستو سبومين درس بستو سبومين درس الزروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف امام الترمذي رحمه الله واسكان فسيح جناته ساد و هشتمين حديث أمام الترمذي رحمه الله ميوياد حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها إصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بل اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله حديث دوتا مشكل دره دوتا علاد دره الا <سؤال> تزافش فضل ابن سلمان یترف، او همش خیلی زیاده و عبید الله ابن علی هم که حادیسش ضعیفه این دوتا در اسناد این روايتهم و روايتهم شاهدی نداره که تخوییت بشه. بگیم به رتبه و درجه حسن اون را براسونه. حدیث ضعیفه حسن ابن علی اینجا در این متن و مدیب عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه مجموعین و مدن نزد سلمه این زن صحابی. گفتن <متحن> که برای ما غذای درست کن که رسول الله صلی الله علیه و دوست داشتن خوششون میومد اومد ازش که بخورن از اون غذا این زن سلمی بهشون ایشون میگه رجلاها یا ابنی لا لیوم بچه های من های من الان شما خوشتون نمیاد از اون غذا امروز اون نوع غذاها الان شما دوست ندارید الان به میل و خوش نمیاد اون غذا قال بل اسمعيه لنا برام درست کن قال فقامت وناشت زن فاخذت شیئا من شعير فطحنته ابل مقدار جو را بلند کرد و انرکویی خوردشون کرد، تا مجبالت او فی قدرن ریخت و قبلمی بیگی و صبب عليه شیام من زیت روی اون جو مقدار روغن ریخ و دقت الفلفل و التوابل فلفل روش ریخت با بعض از محسنات و هدیجات فقربت ويليهم و ما جلويشون آورد، فقالت. هذا من مکانه یعجب رسول الله صلی اللہ و یحسن اکلا این از جمله غذایی است که رسول الله صلی اللہ دوست داشتن و خوش داشتن که از این نوع غذا مل بکنن خب این, این یه گندم با روغن با بعض از محسنات از عدویجات معمولا این نوع غذا برای مریض داده میشه معمولا خصوصا تلبینه که رسول الله صلی وسلم توسین میکنه برای کسی که مریضه تب داره بدن گندم که به حالت شوربا خصوصا پخته میشه و بیرون میاد مثل حلیم خودمون الان این غذای کلا شما اینجا میبینید یه نوع حلیمه فقط حالا محسناتی برای خودش داره فلفل و بعضی از ادویجات این یک از اینو غذایی هست که رسول الله اساسا توصیف بهش میکنه و حدیثی هم خواهد اومد که رسول الله علیه السلام به علیم نبی طلب توصیه میکنه که خرما نخوره و لیکن این گندم یا این نوع یا اون چیزی که توش گندمه بخوره و برای مریض مشکلی نیست خصوصا راحت هست شدنش برای الا معده راحت و بعد توصیه رسول الله علیه و تسلم دیگه خلاصش دیگه نیازی نیست که ما بریم تو بحث طب و پزشکی و بخوام فوایدش و محاسنش رو بگیم صد و هفتاد و نهمین حدیث تمام ترمذی رحمه الله میات حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاتا فقال كأنهم علموا أن نحب اللحمة وفي الحديث في قصة حديث صحيح لما محمد ما من حديث ردوله فلي قصاش تولون ترى نازم ومحمد أسهم الحديث جابر إن خلاصش جابر رضی الله عنه رسول الله صلی اللہ علیه و آله اوماد به منزل ما و برای رسول الله صلی الله علیه و آله بوزی رو سر زدیم برای رسول علیه و آله بوزی سر یک مهمونه یک بوزبراش کرم سخاوت این مهمون نوازیه فقال رسول الله صلی اللہ علیه و آله بهشون میگه که انهم علموا ان نحب اللحم انگار که میدونن که ما گوش را دوست داریم رسول الله صلی الله علیه و آله خصوصا کباب شده رو دوست داشتن گوشتی که مستقیم روی زغالی آتش پخته بشه اینجا را گفتم قبلا هم اشاره کردم که خواهد اومد از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوردن گوش دوست داشتن گوش رو میل بکنن و که اینجا یک لطف و یک معاشرت نیکی هم هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به اکرامشو مثلا اکرامش میکنن و بعد میگه که انگار که میزبان هم میدونه که ما هم چی دوست داریم انگار که داره بهشون میگه اکرام من کردید انگار که داره بهشون میگه دست و دلبازی کردید اینجا برای من زحمت کشیدید اینها گفتم تعارف نیست این حرف دل رسول الله علیه و السلام که از هوای نفسش صحبت نمی کنه و میخواد اون طرف مقابل که داره اکرامش میکنه خرصت بشه غذای باب دل میل ما رو درست کردی برامونو آوردی غذای باب دل میلمون دونستید که ما اینو دوست داریم دیگه برامونو بردی کرامه اون و با غذا اکرام بکنه رسول الله صلی الله علیه و تقابل میکنه با حرف خوب درست داره اکرامشو میکنه و این دومی بالاتر از اون اولی شما بهتون یک سینی بیارن برایم برات سر بزنم بعد بهتون بگم بخور حالا بهتون بگم بفرمایید بکن کدوم یک بهتره بهت بیان سر سفره اخ بکنم بعد بگم بخور به چی میگی زهر میخوردم برام بهتر بود از این سینه و گوسفند برام سرزده برده جلو افت. درست یانه؟ به چشمت بد نمیاد. نه که اون گوسفند شطور هم باشه جلوهت بیارن، دستم نمیزنی. انسان برای خودش عزت نفس داره. اینی که من میگم تعامل ثروتیه که بهاش قیمتش رو هر کس نمیدونه. تعامل با پول نمیشه خرید. رفتار، تعامل. رسول الله صلی الله علیه و آله پولی نداش که بخیره، سر سفر همه رو بزاره. مال نداش می بده. ولی جان و تنشون رو فدا می کردن برای رسول الله علیه و سنت خاطر پول؟ نه. این ادب هست این مرامه است. این رفتاره. تعامله. قیمته باه. باش کی داره میدونه کی راه لبس میکنه، کی داره از مال خودش میبخشه به خاطر اون تعامل صحابه رسول الله علیه و که باش تعامل داشتند. همینطوری مالشونونو سر نمیزنن، زحمت کشیدن، بز و گوسفند این ورا اونور بزرگش کردن، داره سر میزنن برای رسول الله علیه و همینطوری نه یه چیزی دیدن، چیزی شنیدن. میدونم برای کی دارن ان این کارو میکنن بس ادب رفتار تعامل به انسان قیمت میده به انسان بها میده قصش در مصاد محمد چی اومده خود جابر میگه اومدم نزد رسول الله علیه و تسالام فی دین کان علی ابی اتیتو نبی صلی الله علیه و استعینه فی دین کان علی ابی و کمک بگیرم ایران بخاطر بدهکاری که پدرم داشت بعد گفتم تشریف بیار پیش ما میخواد مشورتی بکنه در مقابلم پدرش و بدهکاریش فقالها لكم يا احدى خوشحالي میر بده همسرش میگه لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسالي وله مدى گرب خونمونم حرفی هم واش نمیزنی ها حرفو باز نکم بزنش میگه میگه فذبحنا له داجنا كان لنا اومد بعد یک روزی که بالاخره پیش ما خودمونم زیر دست خودمون بزرگ شده بود داجنه یعنی دست آموز خودمون بود یعنی زیر دست خودمون تو خونه بزرگ شده اون بزه را برای رسول الله صلی علیه و سلم سر زدن گوسفنده بوزه سر زدن بعد به جابر میگه رسول الله صلی علیه و سلم یا جابر که کانک معرفتم حبنا لللحم انگار گاردونیسی یعنی ما من زیر خودش خودشه که دوست داریم دوستت رو قال فلام خرج قالت له للمراه زنش بعد از که رسول الله خارج بشه میگه که صلی علیه و علی یعنی برای منو جوهرم دعا به قال اللهم صل عليه يعني یعنی درود الله بر شما باد درود الله بر آنها باد منظور بر اینها بر این دو زن و مرد قال فقلت لها گفتم بهش از باب سر زنیش الیس قد نهیتک من نگفتم بهت که چیزی نخواه اومده مهمونی پیشمون اکرام کرده ما رو اکرام کرد که ما اکرامش کرد اکرام کرده اومده پیش ما قدم رنجه کرده اومده از وقت خودش به من و تو داده دیگه نباید اونم باشه دیگه بیاد از مهمونش هم چیزی بخواه چیز مالی هم نخواسته فقط گفت که برای ما دعایی بکنه بازم جابر ناراحت میشه از مهموم ما کسی چیزی میخواد. ادب گفتم ادب و تعامل. قالت ترى رسول الله صلی الله علیه و سلم کان يدخل میگه میشه رسول الله صلی الله علیه و بیاد و دعا نکنه. منم نمیخواستم دعا میکرد. حالا منم گفتم یعنی میخواد یک بهانه ای برای خودش بذاره که که منم اگر تقاضای دعا نمیکردم خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما دعا هم میکرد. صداش توومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناعة من رطب فأكل منه ثم توضى للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انظرفه فأتته بعلالة من علالة الشاة فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ حديث صحيح حديث جبران عبد الله رضي الله عنه بازم شما إن أدبر وإن جادر إن حديث ما لمسش ميكوني تقشان خرج رسول الله صلی الله علیہ وسلم و انا معا رسول رفت یه جایی منم رفتم باش همراهی کردم منم همراهش بودم نینی که اون همراه من بودم منم باش رفتم منم همراهیش کردم فدخل علی امرات من الانصار اومد نزد زن انصاری دعوت شده بود رسول الله علیہ السلام فذبحت له شا فذبحت زن اکرام میکنه کرم این زن صحابی این انصاری این زن انصاری براش بوزی سر میزنه فا اکلا من ها الله علیه از اون بوز مل میکنن و میخورن و اتدهو بقناع من رطب قناع یک نوع سینی هست که با برگ درخت نخل ساخته میشه پیش خودمونم زیاده از این نوع سینی ها زرف ها یک نوع زرفیه که توش خورما میذاره از برگ خورما ساخته میشه قناعی از رطب از سمر درخت نخلی که رسیده باشه الان تو این حدیث دو تا تو اینجاش البته این زن بوزی را سر میزنه درست؟ بوزی را فدبحت له شا فاکلمنم بوزی را سر میزنه بعد گوشت را میخوره و اتت ها بقناع من رطب فأكل منه بعد رطب را میاره را میاره بعدم هم بازم رسول الله صلی وسلم میخورن شما بعضی از جماعت ها بعضی از دیدید حالا بعضی لباس ملائی هم بتن کردن میگن اول از اون که آتش ندیده بخورید خداوند نبا بکنید در سوریه انعام در قرآن اول اوورده میوجات بعد اوورده تیمونات و نمیدونم بقیه غذاها و اول باید انسان اون چیزی بخوره که آتش بهش نخورد. از انما امیبیه حسین رتق و فلان و این سنته کجا سنته کی گفته سنته اگر سنت بود رسول الله علیه و سلام اول گوش می‌خورد بعد خورما رو می‌خورد کی گفته از کجا آوردید بعضی اون دیگه به طب سنتی نسبت میدن اگر موفق نشودن اونجا بچسبونن به سنت میان میگن نه تو طب سنتی هم ابن قیم هم گفته یا فلانی هم گفته و نمیدونم فلان پزشک در باستان اومده گفته که باید اول یه چیزی بخوره که بر معده راحت باشه روان باشه اول باید میوه باشه و بعد باید غذا باشه و اون گشت و اون الاخر این ها برمگرده به عادت به عرف به طبع و طبیعت خودت نه این سنت نه اون سنته رسول الله صلی علیه و سلم اینجا اول گشت رو میل کردن بعد اون رتب و اون خورما رو میل نمودن بلکه این کارا شاید برای هضم غذا راحت تر باشه یعنی خوردن شیرینی بعد از غذا غذا را راحت تر میکنه شاید این به اون پزشکی که دادارش ها نزدیکتر باشه خلاف اون چیزی که اونها ادعا میکنه وفاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون سلالشون بین آیه هست، اسمین خسمت از آیه که بله که خداوان در قرآن گفته وفاکهه اول گفته و بعد ولحم طیر بس اول باید میوهجات فواکه خورده بشه و بعد گوشت بله خب رسول الله علیه و السلام که مبین قرآن اینجا خلاف اون چیزی که اونها برداش کردن از قرآن اینجا عمل نمودن قای قرآن این واوی که اینجا آمده دلت بر ترتیب نمیده و اونایی که حالا بلاغت خوندن لغت خوندن میدونن قرار بر این نیست که واوی اگر اومد بین دو تا معطوف و معطوف علیه اون معطوف و معطوف علیه هم مثل هم دیگه باشن هر کدوم الله جل و علا داره مزیتشو بیان میکنه اون میوجات به جای خودش اون گوشتم به جای خودش هر کدوم مزایای خود خاص خودشو دارن اینجا رسول الله صلی اول گوشت و میکنن می بعدم اون خرمای رطب را مل میکنن ثم توضأ للظهر وصلى صفه الرسول عيسى واصحاب وزوج گرفته و نماز خوندن آیا باید بعد از خوردن گوش بعد وضو بگیریم نه اینجا شاید رسول الله صلی الله نداشته و ایشان خاصه تجدید وضو می‌گنه حکمی نمیشه ازش برداشت کرد داره اون حار را میگه اونجا رسول الله صلی غذا علیه و سلم قضا بعد وضو گرفتند رفتن نماز خوندن نماز ظهر این کی بوده ناشتا نهار نهارش رو قبلا کی میخوردن قبل از ظهر شامشون معمولا بعد از ظهر بعد از عصر یا بعد از نماز عشا میخوردن یعنی مسئله به عرف و جامعه و به وقت ما برمیگرده یک چیز ثابتی نیست مثلا ما داشتیم که پدر رسول الله عزیزت و حسن بعد از مازعشا شام بخورن میل بکنن و اینجا در همین حدیث داریم که در دو وعده میل میکنن همین گوشت را ابتدا در وقت صبح عنوان نهار و بعد از عصرم عنوان شام میل میکنن همون بوزی یا گسفندی که براش این زن انساری سر زدن خب اینجا آمده در این حدیث پس رفت نماز خوندن ثم انصرف یعنی بعد از اینکه نماز ظهر خون منصرف شدن دوباره برگشته پیش این زن انصاری فاتته بعلاله من علاله الشاه باقی مانده اون گوش علاله بهش میگن باقی مانده اون گوشته باز یا گوسفند را دوباره اون زن آورد نزد رسول الله علیه الصلاه و السلام فااکل بازم رسول الله علیه و سلام مقداری از اون گوشته را خوردن آیا این تهاوز ذره به اون چیزی که قبلا یاد شد از ام المؤمنین عایشه رضی عنها که میگویند ما شبعا من خبز ولحم المرتين فی یوم رسول الله علیه و سلام گاهی در یک روز از نان یا گوشت سیر نشده بوده نه تهاوزی نیست رسول الله صلی الله علیه و سیر نمیخوردن خوردند ام میگه اینجا هم یک قسمتی یک چند تیکی از گوشت در وقت نهار خوردن و در وقت شام هم چند که دیگه از باقی مانده اونو گوشت خوردن سبحان الله الان بچه های امروزی خصوصا که زیر دست ماها دارن تربیت میشن اگر غذای نهار اضافه شد اگر خواستن پدر مادر یا اون مادر که الله خوستن مسئول اون خونه و منزل و زندگی هست اگر خواست اون غذا را به وقت شام بذاره بچه ها زورشون میاد غذای پس مونده بخوریم ظہر خوردیم شام هم بخوریم نهار خوردیم شام هم بخوریم رسول الله علیه و السلام اشرف خلقه نهارش چن تیکه از اون که اون زنه پخته شامش هم از همونه باقی مانده اون علاله باقی مانده اون غذا از اون گوشت رسول الله علیه و السلام در وقت شامگاهشون مل میکنن فاکلتم صلى العصر ولم يتوضا این بار دیگه وضو نگرفتن تجدید وضو نکردن نماز عصر را با هم و بدون نماز خوندن اگر وزو گرفتن بعد از کردن گوش واجب بود. اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله بیان می‌کرد و تاکید وضو می‌کردند. اون چیزی که باید مراعات بشه وزو گرفتن بعد از کردن گوش چطوره؟ اما بقیه گوشت ها چه مرغ چه گوسفند و بزش دیگر وضوئی بر ما واجب نیست بعد از کردنش. و و یک مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید یا تحدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليا من هذا فأصل فإن هذا أوفق لك حديث قول تحسينش تحسين اشم حديث حديثة ام مندر رضي الله عنها يميق ياد تشريفه بعد النظام دخل عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفه بعد النظام همراهش عالي بنا بود تشريفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشما و همراهش عالي بنا بود. همراهش عالي بنا بتالبوت أفس الله صلى الله عليه وسلم قدم أمره عنا قادي بيشش و لنا دوال معلقه دوال به اون خوشه خرما گفته میشه قبل از اینکه برسه خرمای نارست مستمره درخت من قبل از اینکه برسه میبردن اون خوشه درخت نخل بعد میذاشت در خونه آویزش میکردن تا اینکه برسه تا اینکه برسه رسول الله صلی اللہ علیه زمانی که وارد شد منزل این زن صحابی ام المنذر رضی الله عنها همراهشم که علی بن بی طالب گفتیم بود شروع کردن رسول الله صلی بخوردن از اون سمره درخت نخل از اون رتب رتب که حالا نیم رسه شروع کردن بخوردن فجعل رسول الله صلی اللہ علیہ و علی امعه یکل علی هم ایستاده رضی اللہ عنه میخوره استادنا چون آویز کرده بالا از کجا گرفتیم که رسول الله صلی اللہ از خود حدیث کلا خواهد بود ایستادن غیر بانشستن یعنی این جا میشه برداشت کرد که خوردن مشکلی نیست اگر جز جزء خواربه مروت و, و زیشتی در اون جامعه نباشه بی استاده خوردن مشکل شرعی نداره خصوصا اینجا که علی ابن نبی در مورد حدیث قعده گفت که علی می نشینه و رسول الله صلی الله علیه و الیهم هم تو کی به خوردن ادامه میده علی ابن نبی زمانی که دست میگیره از اون صمره درخت نخرو خوردن از اون خرمای رطب خوردن رسول الله صلی الله علیه و الیهم به علی ابن میگه مهی علی ای علی دست بکش دست نگهداره فانک ناقه تو تازه خوب شدی از مریزی تو تازه خوب شدی قالت زنه میگه فجلس علی علی میشینه اونجا گفت نخور چاش نخور چاش عدبه برا صدا علیه صلی و سلامه نشست والنبی صلی الله و سلام یاکل شروع کرد رسول الله صلی الله و سلام بخوردن ادامه داد بخوردنش قالت زن میوم ام میگه رضی الله عنها فجعلت لهم سلقا وشعيرا فجعلت له سلق نباتیه مثل برگ البته خوب از این نوع سبزیجات ما انواع مختلفی داریم برگ تروپچه داریم برگ خردل داریم جعفری گشنیز اینا همه محسنات غذا هست خصوصا وقتی که گندم پخته میشه این نوع برگ سبزیجات رو داخلش میریزن به خاطر خوشبویش و خوشتعمی و خوشمزگیش حالا اینجا زن این میگه که من این برگ تروپچه را ریختم توی فجلت و لهم و شعیرا براشون این قرار دادم اون گندم پخته شده البته معمولا هم این برگتروب چر هم قبلا هم میپختن با جو میاد این چیزی که پخته هست از جو حالا مثل حلیم خودمون امروزی تقدیم میکنه به رسول الله صلی الله علیه و علی ابن نبی طه فقال النبی صلی الله علیه و علی علی من هذا فاصب از این بخور از این بخور از این جوی که پخته شده با این سبزی اینو بخور این برای تو خوبه یعنی این برای تو مشکل نداره این, دا این با طبعه تو بیشتر سازگاره با جسم تو بیشتر سازگاره خوصا توی که الان خوب شدی از اون مریضی این یک توصیه هست الاسودو علیه صلی اللہ به نحوه تعامونمون با مریض با اون چیزی که مریض را باش درمان بکنیم تا جون بگیره اون مریض چی برایش خوبه گوش ندیم برایش سنگینه اجبارش نکنیم برای خوردن غذا خوستن غذایی که سنگینه بکه غذایی ساده بهش بدیم مثل تلبینه، مثل همین حلیم مثل شوربایی یه چیزی که هم نر باشه هم برای معده سبق باشه که سنگینی نکنه که سبب بشه که فشار روی معده طرف بیاد و مریضیشو سختر و سنگین تر بکنه سادو هاشتودو حديث نمام التلمذير رحمه الله من حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال و ما قلت حيث قال اما اني اصبحت صائما قالت ثم اكل من حديثه صحيح حسنه المهم تحسینش يكون احكام فقی البته دارين حديثم هست رسول الله عليه الصلاه والسلام نهار چیزی نخورده بودن بعد از نماز صبح وقت سبحانه یا هم وقت نهارشون نهارشون قبل از نماز ظهر میخوردن خوردن اومدن نزد امنین عائشه در اول وقت در همون وقت صبحانه خودمون گفتن چیزی هست که بخوریم میل کنیم بعد اون اون میگه که نه چیزی نیست زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله می از من میپرسید که چیزی هست یا چیزی نیست و اگر گفتم چیزی نیست می میگفت که پس من روزه ام. یا قولوی نسا میگفت که من روزم. ام. خب یک حکم شرعی رو داره بهمون میرسونه و اونم این که اگر در سنت نیت از شب نکردیم میتونیم وسط روز اگر چیزی نخورده باشیم هم نیت بکنیم. ولی در فرض نه، باید نیت از شب باشه. فرق بین روزه سنت و روزه فرض. البته در حدیث هم داریم. در حدیث دیگه هم داریم که رسول الله صلی الله علیه و قبل طلوع الفجر فلا صیامه کسی که قبل از طلوع فج نیت نکنه روزه نداره روزه فرضه این در روزه فرزه که حدیث در سنن داره خودنین اما در روزه نافله این حدیث درات بر این میده که انسان اگر چیزی نخورده باشه چیزی نخورده باشه میتونه چی میتونه نیت بکنه از اون وقتی که از وسط روز الا بیدار شده از خواب یا سر کاره میتونه در همون جایی که لب یاد که چیزی نخورده میتونه به نخوردنش ادامه بده با نیت روزه خب عموما علیه هم میگه فاتری من رو یک روز الله، فقلتو یا رسول الله إنه اهديت لنا هدية. امروز برامون هدیه اووردن رسول الله علیه السلام محمولا خب داره میگه اگر چیزی نبود میگفت روزم حالا چیزی هست خودمون عایشه میگه رضی اللہ عنوی رسول الله گفتم که هدیه برامون ووردن گفت خب چیه رسول الله سفر, سفر بودن گفتم حیث حیثم که گفتیم قبلن با گندم و خورما و روغن درست میکنن معمولا با همدیگه قاطی میکنن که نر بشه بعضی هم روی آتش هم میپزن خورما با اون گندم یا با اون آرد و روغن با همدیگه قاطیش میکنن که نرمش میکنن عنوان حلوا هم استفاده میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب اون معایش این چی میفرماید اما اینی اصبحت و من من که نیت روزه رو داشتم قالت و مکل ولی چی؟ وجود که نیت کرده بود روزه باشن ولی خوردن وقتی که حیث رو دیدن حیث رو خوردن این چه برداشت میکنید دوست داشتن رسول الله علیه و نسبت به حیث دوست داشتن این طبیعت این بحث غذا رو خوردن این یک قسمت بحث دومم بحث روزه نافله هست سنت دست خودته میخوای ادامه بدی میخوای بخوری میخوای بشکنی اشکال نداره گناهی بگردرت نیست روزه این رو شما میتونی ادامه ندی و هر وقت خاصی اون روزه را بشکنی دست خودته شکستنش میگه شکستنیه که بشکنی وزو شکسته میشه روزه هم شکسته میشه این الفاظه که حتی در لغت هم میچنی اصطلاحاتی داریم به قد کردن اون عبادت شکستن گفته میشه حالا چه وزو باشه چه نماز باشه و چه روزه باشه نمازش رو شکسته چی باطل کرد روزه هم همینطوره. سادة حديث إمام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمره وقال هذه إدام هذه وأكل حديث زيفة حديث زيفة بخطر يزيد بن أمية كم کسی که داره از یوسف نقل میکنه رواد میکنه یوسف بن عبدالله ابن سلام رضی الله عنه میگوید چنانچه در این حدیث اومده میگه که دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم قطئه من خبز ای قطعی از نان جو رو برداشتن فوضع عليها تمره روی النون خرمه گذاشتن و قال هذه ادام هذا این مصلحه اینه یعنی خرما اینو نرم میکنه یا اینو قردنش راحت میکنه و اكل از اون نان جو با خورما خوردن حدیث هم گفتیم که ضعیفه. اما آخرین حدیث این باب، اون چیزی که در مورد غذاهای رسول الله صلی الله و علیه است. حدیث سده چهارده امام الترمذی رحمت الله میگوید حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا سعید بن مسلمان عن عباد بن العوام عن حمید عن انس رضی الله عنه. ان رسول الله صلی الله و عليه كان يعجبه الثف الثف. انس رضی الله عنه اینجا میگوید حدیث صحیحه. ان اسعد میگوید عليهم رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتن تهدیک میگه تهدیک بود. مگه برنج بود که تهدیک بخورن نه لازم نیست که تهدیک برنج باشه یعنی اون چیزی که تهدیک میمون حالا سیب زمینی باشه حالا گندم باشه حالا میخواد نون باشه حالا بعضیا گفتن به خاطری که اون غذا بهتر پخته میشه بیشتر پخته میشه خوشمزه تر میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون تهدیک را دوست داشتن رسول الله عليه الصلاه والسلام اون تهدیق غذایی که تهدیق بود رو دوست داشتن نه اینکه بعضی جاها عنوان پس مونده آب روش و بعد تا اینکه فرداش دور می‌ریزن نه رسول الله صلی الله علیه و اون تهدیق را دوست داشتن که مل بکنه نه اینکه دور بریزرا دوست داشتن علیه الصلاة اللہ اللہ بحمد و السلام سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد وعلى اله محمد